ببینید ضعیف و مستضعف به دو معنی داریم یه ضعیف آدم های بیارزه تو سری خوره رو به ضعف و زیر بار ظلم رفتن کشندن و این مطلوب نیست کونول ظالمه خست ما از ظالمه و المظلوم کلاه ما پنار انسان نباید زیر بار ظلم هم بره خودشو اینجوری قرار بده اما مستضعفی که یکی از الغاب امام زمان علیه السلامه و نورید و انمونه عللذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم <الباره> اینجا این آیه همه گفتن راجبه امام زمان علیه السلام اینجا استضعاف که مستضعف مستضعف امام زمان و پیروان امام زمانن خدا اراده کرده که اینها رو غلبه بده بر مردم مسلط کنه این استضعاف به چه معنیه به اون معنی است که در آیه 98 سوره نساء اومده نعوذ بالله اونجا چیه وقتی ملائک میان تدافع و همول ملائکه ظالمی انفرسه. وقتی ملائکه میان جان انسان ها رو بگیرن اونایی که به خودشون ظلم کردن. آدمای بدی بودن. قالو فیم کنتم. ملائک قبض رو به میگن چه وضعی شما دارید؟ چرا اینجوری زندگی کردی حالا دارید میمیرید ببینید چه وضعی دارید؟ قالو از مستزعفین فلحرز. میگن ما ضعیف بودیم مستضعف بودیم قالوا الم تکن عرض الله واسعه و میگن مگه زمین خدا وسی نبود هجرت میکردید شما جای دیگه میرفتید مثلا این استضعاف رو قرآن چه میکنه سرزنش داره میکنه اما اونجا و نرید ان نمن علی الذین استذعفو ف العرض انکه تعییده پس استضعاف دو معنی داره یه استعاف معنی غلط زیر بار ضعف رفتن و ضعیف شمردن و مظلوم واقع شدن و تو سری خور اومدن و نه این اسلام نمیپذیره اما استعاف به این معنی که در مورد امام زمان و ائمه همشون مطرحه اینها حقشون شناخته نشد نسبت به جایگاه و مقام همکاری نکردند اینا در یک جایی قرار گرفتن که مردم نسبت به حریم و ارزش اینها اینا حالا که تو یک چونی خیلی نکته ظریفی تقاضا دارم دقت کنید یعنی انسان توی شرایط اجتماعی قرار میگیره یا باید ظالم شود بزنه بگیره ببره ببنده بخوره تا بتونه تو جامعه سری بالا بگیره یا باید زیر بار ظلم بره ضعیف تو سری خور باشه هیچ اقدامیم برای حق نکنه این هر دوتا رو اسلام رد میکنه میگه نه ظالم باش از ظالم و بل مظلوم این دوتا رو رد میکنه ظالم نباش ستم نکن اگر آقا خواهی نشوی رسفا هم رنگ جماعت شو نه این کار غلطه چرا هم رنگ اگه جماعت دروغ میگن تا پیش ببرم الان تو کسب و کار ما من شنیدم ان اینجوری نیست چقدر افراد میگن آقا جون از معركه بیرونی اگر اینجوری که تو میگی بخوای کار بکنی که کلات پس معركه است یعنی چی یعنی اگه بناس روش بدیم, بدیم اگه بناس تو فلان اداره بزن و ببند کنیم تا فلان جنس وارد کنیم این کارو بکنیم اگه بناس به همه که ما دیگه مثل بقیه بگذاریم اگه بنا رو گران بیه خب این میشه چی میشه ظالم نقطه مقابلش چیه آقا من در حد لازم جدی خوب میتونم حرکت کنم خوب حرکت کنم در حد خوب اما نکته سوم چیه اگر ظالم باشیم رد است مظلوم باشیم به این معنی رد است سوم چیه میخوایم سالم زندگی کنیم جو جویست که سالم زندگی میکنیم و از میمونیم یعنی عملا مثل بقیه نمیتونیم سر بلند کنیم میگه این بهتره امام زمان علیه السلام مستضعف به این معنی است یعنی چی؟ یعنی امام زمان نمیخواد باطل رو بگیره لذا حقش واقعا قشنگ گفته سکه تو زن تا امره کم زنن خطبه تو خان تا خطبه دم زنن یا اون شعر بلند مرحوم آیت الله کمپانی بر هم زنید یاران این بزمه بی را مجلس صفا ندارد بی یار بزم آرا چرا مجلس صفا نداره یار بزم آرا بزم آرایی کند برای اینکه اگر بخواد ظاهر بشه یا مثل امیر المؤمنین بشه سر در دل چاه کنه یا مثل امام صادق باید کلاس درسی رها کنه یا مثل امام کازم باید زندان بره خدا میگه فیلم نکنار باش تا وقتی که مردم بخوان تو این میشه مستزعف و نرید و انمون نعلل وزین از توز افوف الارز و نجعلهم اعمه و نجعلهم